از آیت الکرسی سوال پرسیدن که منظور از این ظلمات و نور که ظالمین از نور به ظلمات میرن و مؤمنین از ظلمات به نور میان منظور از ظلمت و نور چیه؟ آیت اون ستایهی که در سوری بغیره هست خوب اگر سایه هم خونده بشه خوبه ولی همه آیه اولش آیت الکرسی هست و اون حواید خاص آیت داره در مورد ظلمات و نور و اینکه بعضی از نور به ظلمات میرن بعضی از ظلمات به نور میان همین مسئله اروپی هستش که در میون انسان ها برقراره بعضی از ایمان به کفر میرن و بعضی از کفر و شرک به ایمان میان